سلسطه دوم از رساله و کاشفیت ذاتیه داره از واقع وقتی کسی قط به خمریت پیدا کنه در واقع این خمره و اینکه قط طریقه به واقع باشه و واقع رو نشان بده و کاشف باشه این طریقیتش هم ذاتیه و نفسیه برای مبانی مصنده. ولی سر طریقیته قابلتن لجعل شاره طریقیتش تکوینی و قهری قابل جعل و اعتبار نیست یعنی شاره نمیتونه بگه من قطر رو معتبر قرار دادم یا بهش اعتبار دادم یا بهش طریقیت دادم تریقیتش قابل جعل شرعی نیست شاره تصرفی در این حیته نداره البته که تمام تصرفات شارع در حیضه اعتباریات خودشه و در تکوینی یاد و واقعیا تصرفی نداره و چون مفروضینه که تضیقیت قد ذاتی و تکوینی و واقعی قابلیت جعل شرعی رو نداره نا اثبات ای اینه شارع میتونه به قد بده و نه نفیان یعنی نمیتونه طریقیت قدر رو نفیش کنه و برداره بگه من این قدر حجت نمیدونم یا اون قدر حجت میدونم و امثال اینا طریقیت اگر ذاتی باشه قابلیت تصرف نداره حتی از طرف شاره به خاطر که حیطه تصرفات شاره حیطه شرع و شامل تکوینیات و واقعیات نمیشه و من هنها یعنی به خاطر اینکه طریقیت قد ذاتی و تکوینی نقابلیت جهل شریع رو نداره شاره نمیتونه به قد بده طریقیت بده یعلمو ان اطلاق الحجت علیه ليس که اطلاق الهجت على امارات المعتبرت شرع یعنی اطلاق حجت بر قد مثل اطلاق حجه بر سایر امارات نیست یعنی اطلاق حجه بر امارات اطلاق حقیقیه و اطلاق حجه بر قط یک اطلاق مجازیه یعنی اگر کسی بگه قاعده حجه این تجاوز اگر کسی بگه اماره حجه این حقیقته بنابراین اطلاق حجه بر قاعده مثل اطلاق حجه بر سایر زنون و امارات معتبره نیست چرا به خاطر اینکه که سه تا معنی داره معنی اول حجیت لغویه که عبارت باشه از ما وجبت مطابعت و چیزی که مطابعتش واجبه اگر چیزی قد پیدا کنه و قدرش حجت باشه به معنی لغوی یعنی مطابعتش واجبه اسم معنای اول و قسم اول برا حجیت حجیت لغویه یعنی ما وجبت مطابعت و اقنا قسم دوم از حجیت حجیت اصولیه یعنی چیزی که شاره اینو حجیت قرار داده و متعلقاتش رو تعبدن اثبات کنه. یعنی اگر کسی عمار قائم بشه براش بر خمریه اون متعلق این اماره تعقضا اثبات میشه برای اینکه آثار براش مترتب بشه این حجت اینو اصولی یعنی معتبره و شاره حجتا برای اینکه متعلوماتش اثبات بشه تعقضا و آثار براش مترتب بشه اسم سوم که شاید متداول حجیت منطقیه حجیت منطقیه همون حد وسط در بیاسه که احتجاج میشه با این حد وسط بر ثبوت اکبر برای ازخار یعنی ال و متغیرون و کل متغیرین حادث فل آلم حادث این متغیر حد این رو مناطقه بهش میگن حجت به این تقسیم یعنی تقسیمی که بر حجت از نظر لغوی و اصولی و منطقی شده اطلاق حجت بر قط مثل اطلاق حجت بر سایر امارات معتبره نیست در این تجازه در آنها حقیقت به خاطر این که طریقیت و کاشفیتش ذاتیه ولی امارات طریقیت و کاشفیتش اعتباریه شاره اون رو حجت قرار داده تا این نه بعد تحبیراتی که مصنف داره تصامحاتی درش هست تصامحاتی داره اون تصامحات رو فعلا متعرض نمیشیم تا مباحث یه مدار پیش به تو زین اشکالاتی نسبت به مطمیش نیاد و اون تصامحات رو متعرض میشیم ولی به خاطر این که فرق از بین قطع و سایر امارات قطع و چیزی ذاتیه الان تقسیم میگهده موجهد رو به سرست دو قوی اصولی و, و منطقی بعد منطقیش اگه مدد نظر باشه نسبت به امارات ست میکنه و نسبت به قطع ست نمیکنه چون ذاتیه دیگه حد به وسطی درکار نیست والله خودش شیخ تره. ما از اینجا یو اعلام نیست لغ الهجت عليه لیس که اطلاق الهجت على امارات المعتبرات الشرائع. یعنی یک بقایت الهجت میگیم تا جا اگه به یک بقایت میگیم الهجت این حقیقت داره. دلیلش اینه، لان الهجت عبارت اون عن ال verses الذي بهیه تج على سبب الأجباد للأسكار. یعنی همون متقایه، وطیت منطقیه. که متداوله و اصل در حکیت عبارت از دادون حد وسطی که ما اکبر رو برای ازگر اثبات میکنیم یعنی حدوس رو برای عالم آل... اثبات میکنیم به واسطه تغییر و یاسیر و واسطه تن فل اثبات لقطع به سبوتیله به خاطر این این تغییر واسطه در اثبات واسطه سده شده هرون یادس کنن که تو اون واسط ابهام بیش نیاد واسطه یا واسطه در ثبوت که اصطلاحا بهش میگن علت واسطه در ثبوت یعنی علت هدی اسم دیگه ای هم داره در کلمات اصولی این داخل طالانه ذوایم بنویسن حیثیت تعلیلیه بهش میگن واسطه در سبوت همون حیثیت تعلیلی است قسم دوم از واسطه واسطه در اثبات یعنی اثبات شیعی برای شیعی واسطه شده برای اثبات الان این تغییر واسطه شده برای اثبات حدوث برای آلم این واسطه در اثبات واسطه در اثبات یعنی سبب علم انسان به شیء ما از کجا علم پیدا کردیم به حدوث عالم به واسطه تغییر ما به واسطه یه در اثبات همون اسباب علمه که مرتبط به عالم تصدیقه می میام واسطه یه در اثبات به سبب علم انسان و قیاسات از این قبیله قیاسات واسطه در اثبات هن. یعنی اگه شکل اول شکل دوم شکل سوم یا یعنی شکل چهارم رو تشکیل میده که ضعیفترین نوع قیاسه اینا برای واسطه در اثباتن. با چیزی رو برای کسی اثبات کنن واسطه میخواد قیاس واسطه در اثبات برهان واسطه در, در اثباته از نظر علوم اسلامی. در کنارش عرفان هم هست یعنی عرفان نظری خودش واسطه در اثبات مثل برهان، مثل قیاس ولی کاری بانه ها نداری نمیده که استه در اثبات همون اثباب علمه همون قیاساته و عدلهی که اقامه میشه تمام عدلهی اقامه شده در علم اصول و فق بر فروعات فقهی رو بهش میگن واسطه در اثبات چه چه زمون معتبره چه اصول عملیه همه این ها واسطه در اثبات هم ما میخواییم فروعات فقی رو اثبات کنیم این نیاز به واسطه داره واسطه شمان عدله و امارات و اصول هم. این قسم دوم از واسطه قسم ثوم واسطه در اروزه واسطه در روز چیه مسحه حمله چیزی که هم رو و اضافه رو تصحیحش میکنه یعنی میزاب سهیه ولی واسطه در اروز داره حرکت جالس سکینه، سفینه تا حرکت خود سفینه این سهیه به واسطه واسطه در اروز یعنی حرکت سفینه که واقعیت داره و حرکت جالس سفینه که مجازه به واسطه واسطه در اروزه یعنی سفینه واسطه شده برای اروز حرکت بر جالس چندسی که در سفینه نشسته یا در ماشین نشسته حرکت داره میکنه به واسطه در اروزه واسطه در اروز هم در علم ادبیات مطره کسحه حمل مجووز حمله تمام موارد مجازات رو میگن واسطه در اروز و هم تقییده المصول مطرحه که اسم که ای داره بهش میگن حیثیت به واسطه در اروز همون حیثیت تقییدیه یه مطرحه در المصول سه قسم واسطه داریم واسطه در سبوت که همون علت علتش یکی واسطه در اروز که ایسیت تغییدیه میگن استلاحا در علموصول بش و شاید از اهم مباحث علموصول باشه و قفلت از این مباحث که باعث میشه انسان در مقام استنباد نتون استنباد کنه و قسم و واسطه در اثباته که همون و امارات و قیاسات و براهین هم نمی واسطی در اثبات حالیشون برموده وجهت منطقیه عبارتون ان الوسط لذیر پی و تجالا ثبوت اکبر الاسقر و یسی واسطتن فل اثبات واسطی در اثبات میشه یعنی همون تغییر که حد وسط وازده در اثبات اگر اون نباشمانه میتونم هدوست رو برای عالم اثبات کنیم قطع به ثبوت هیلهو به خاطر اینجا قطع داریم به ثبوت اکبر برای ازگر یعنی کل و تغییرین حادث به عنوان کلی قطعیه و چون کبرای ما قطعیه ثبوت واقعی داره میتونیم در مقام ظاهرم حدوث رو برای عالم اثبات کنیم دلقت به ثبوت هیلهو کبراویان این اضافه کنید دلقت به ثبوت هیلهو کبراویان یعنی کبرای غیر قابل مناقشه کلما تغییرن حادث ده به ثبوتش هست بعد این کوبرا رو ما استفاده بکنه عنوان واسطه در اثبات برای اثبات حدوث برای آن. پس یسی و واسطه تنفل اثبات چرا به خاطر که قابلیت واقع شدن عنوان کبرا رو داره لقطه به ثبوت لهو یعنی حدوث برای متقیل اطلاع ثابت چون این کبرا صادق کل متغیر نادست که تغیر به اثبات حدوث العالم که مثل تغییر که واسطه میشه برای اثبات حدوث عالم از واسطه در اثبات همون عدله و امارات و قیاسات و براهین و کبرایاته در هر بحث اصولی اگر کسی بگه ما کبرا رو منقع کنیم یعنی واسده در اثبات تمام کبرایات بحثای کبراوی واسده در اثبات واسده در اثبات اگر بحثا کبروی باشه اما بحث در خودیت قطعه آیا این بحث کبراوی یا غیر کبراوی سر سوق ما باحث که بحث کبراویه یعنی آیا قط خودیت داره یا نداره این اینطور نیست واقع اینه که حجیت قدر غیر قابل خلافه کسی اختلاف درش نداره کسی نیمتونه اشکال درش بکنه منطقه پس از یه بسیر دیگه از اون اینکه که حجیت برای قدر به ماه و اون ثابته یا به ما و انکشاف اون دلواقه یعنی اون میعیار حجیت الان محل بحثه للا اصل حجیت قدر محل بحث نیست کسی نمیتونه نکار کنه حجیت قطر رو از ده سز حجیت در علم اصول از یک زاویه دومیه دو ما اون زاویه اینه که آیا القط و حجیتون به هو قطرون یا القط و حجیتون به ما هو انکشافون للواقع اگر اولی باشه یعنی القط و حجیتون به در این صورت غیر قط حجید نداره نه اماره نه سایر عدلده و اصول عملیه و قواهشد اون چیزی که داره قطع اوه ماه و غیر قابل تعطیب سایر موارده یعنی ذات قطع خصوصیت داره اگر دووممی باشه قطعه به ماه و انکشاف اون دواقع و داره در این موارد هر انکشافی رو داره. میخواد قطع باشه میخواد اماره باشه میخواد قوعد باشن میخواان صود باشه، میخواد ساید دلله انکشاف باشه فرق نداره. پس بحث در ح چیت قطع به ماه ما و قطع نیست بعدکه به ماه و انکشاف اوندلواقعه ما اون، معیار حجیت رو اونی اینکشاف واقعی رو بهش میگن معیار حجیت بعد در اصل حجیت قطع نیست بعد معیارشه معیار حجیت قطع یا قطع خود ذاتشه یا انکشاف اون خاصیت انکشافشه چه دیگه تو قع به ماوقوقت کسی علم پیدا نکنه جه نه رو همان باشه بنابرا مبنای اول که قصد به ماوقت وجودوجت باشه نمیشه ولی بنابرا مبنای دوم که مبنای شیخ خانصی به مشغوله بیا قع ماوقین که شافوننده وااقات چیت داره تخصوصیت نداره به خاطر منکشف یعنی خاصیت اینکه شافشه و اون خاصیت اینکه در در اماراتم است در اصول عملی هم هست در قواعد فقهی و اصولی هم هست در همه شون انکشست و جب همه شون مترد پسیاسی رو تن، فن اثبات دلقته به ثبوتی لهو این واسطه در اثبات میتونه باشه چرا؟ به خاطر کبرات هم دلقته به ثبوتی یعنی کبرات همه اگر کسی بتونه یک کبرایل اثبات کنه یقینا اثبات زغرا سهل و آسانه ما ببینیم تصامهات در تحبیراته مصنف میگه طریقونه دلواقع اینا رو ما بخوان تغییر بدیم اشکالات زیادی وارد میشه و اما تحویزون چیزا نیستیم قط طریقه به مقتوعه نه به واقعه اون قاطعه شاف خلاف راه داره و باید پیدا کردیم خمریتانا خم نیست پس طریق طریقیت به مقتوعه نه به واقع اینا ها تصامحات در تحبیر شیخنساریه و کتابی پیدا نمیشه که خیلی خیلی این ها در کرده باشه و این قرآن فقط اختلاف درش نیست غیر اون حتی خیلی از روایات ما چون نقلب همین همینطوره طریق طریقیت مقتوه واقعه به خمریت پیدا کردیم خمریتش مقتوه این طریقیت به اون مقتوهش داره نه به واقع شاید در واقع خمری نباشه در موارد تجربی خمری نیست بسید در عبارت اونا رو نمیخویم حالا متعرض بشه که تغیر ده اثبات حدوث العالم فقولنا از زنو حجتون عمل بینتون حجتون او فتوا حجتون یراد و بهی کونو حاضر الامور اوساطن لإثبات احکام متعلقات ها اینا حد وسط هستن زن حجتی یعنی, یعنی دلیل بر حکم شرعیه خود اینه واسط در اثبات هستن دیگه واسط در اثبات یعنی یعنی همین عدل زن مجتی یعنی دلیلیت داره قیانه مجتی یعنی دلیلیت داره فتوای مفتی مجتی داره یعنی دلیلیت داره یورا و بهیکون حاضرمون اصاد هم لی اثبات احکام متعلقات ها یعنی زن به چی تعلق گرفته؟ زن نه به خمریت حکم خمریت برش متردده میشه متعلق قیانه چیه؟ قیانه در قتل اکمه قطع که قصاص متردد میشه فرفای مفتی هم هم اینطور به چی تعلق گرفته تمام این ها متردد میشه فیقال هازا مزنون الخمریه و کل مزنون الخمریه یا جوال اجتماع با انهو از حد وسط واقع میشه زن ما حجته یعنی حد وسط واقع میشه بخاطه اینکه میشه بگیم کل مزمون الخمریته یجبال اجتنابانه و کذاله که قولنا هاز الفعلو من ما افتر مفتی به و كل ما افتر المفتی به فهو حرام یا اینکه هازا ما قامت البینتو علا كونه محرمن و كل ما قامت البینتو علا كونه محرما فهو حرام کلو و کلو ماکان کذالک فلا و حرام یعنی کلو ماکان از قبیل افتای مفتیل یا از قبیل اقامی بین در این موارد اینا حد در وسط واقع میشه بنابراین حجیت این موارد حقیقت داره به خاطر واقعا حد در وسطه و این رو نسبت به قط نمیشه بگیم و حاضر به خلاف لعنه ازا قطع از زیدون به وجود شیئن یا قطع به وجوب شیئن فیقال هازا واجبون و کل واجبن یه رم زدو او یجب مقدمتو یه به صورت کبرای کلی و خیزا لیکل علم و بالموضوعات یعنی فیضا قطع به خمریت شیئن اولی احکام بود این دو بود موضوعات. قطع به خمریت جه، فیو قال و کل خمرین یجب ولش نابن هو، ملاویو قال، معلوم الخمریه، و کل معلوم الخمریت هکم كذا چرا؟ لان احکام الخمر این نم تسبتو نفسها الخمر نفسه، لولما ولما آنهو خمرن. یعنی اون قیاسی که در موارد زن میشه تشکیل بدیم در موارد علم نمیشه تشکیل بدیم یعنی نمیشه بگیم خوضا خمرون و خوضا معلوم الخمریه و کل معلوم الخمریه تیز بل اشنابه یعنی در کبرا علم رو نمیتونم اخص کنیم چون در کبرا علم رو نمیشه اخص کنیم برابر این حد وسط واقع نمیشه و چیزی که حده وسط واقع نمیشه اطلاق حدشت برش تسامو و تجاوزه. اون چیزی که واقعیت داره از نظر فقی و اصولی اینه که خمرون و کل خمرن یعنی بلشتناب نه اینکه حاضا معلوم خمریه و کل معلوم خمریت یعنی بلشتنابن اینطوری نیست بنابراین علم در اون کبرا اخس نمیشه وشون علم در کبرا عقص نمیشه حد و واقع نشده و چیزی که حد واقع نشده یعنی اطلاق حجت برایش تجاوزه اونو میگی خودشون خودش میگه. در موارد قطع موضوعی که علم نخالت داره اونو خودش استثمه کنه در اینه که اطلاقش این دو تا بحث مثلا یکی این که بگیم اصلا اطلاق نداره بر قطعه و جت اطلاق نمیشه اون تمام اخصام قطعه رو میگه ولی ایشون میخواد بگه حقیقتن اطلاق نمیشه تجوزن اطلاق میشه اون خواده در مواردی که الموضوعیه اطلاق حجت بر قطعه یک اطلاق مجازیه نحقیقی به خاطر این که حقیقتا حقیقتا اون چیزی که ثابته برای ذات خمره نه برای معلوم خمریه بعضی از موارد شاروم علم رو دخیل نسته در موضوع بنابراین اون موارد موارد مجازی میشه یعنی برخلاف قاعده اولیه شه در مواردی که برخلاف قاعده اولیه باشه میشه تجاوز هم در علم به احکام مثل قطع به هر شئی هم قطع به موضوعات احکام مثل قطع به خمریت علم حتی وسط واقع نمیشه حالا مدعای مصندفه محقق ناینی نا و دیگر ماشین مثل اوسق و بهر الفوائل یا قائلا به اینکه ما چرا بیاییم بگیم این علم حتی وسط واقع نمیشه به خاطر این که حتی وسط و اون چیزی که ایشون داره میگه مضافن بر اینکه که در موارد علم موضوعی راه داره حجیت دو تا معنی داره یه اصولی داریم یه حجیت منطقی داریم و اون چیزی که مد نظر اصولیه اینه که قد حجیت اصولی باشه نه حجیت منطقی مصنف خرد کرده بین دو اصطلاح اصولی و اصطلاح منطقی قطعیت منطقی نداره چرا؟ به صورت خیلی خیلی ساده قطعیت یعنی چی؟ یعنی علم قطعیت یعنی علم دیگه قطعیت منطقی یعنی چی؟ یعنی واسطه در اثبات یعنی سبب علم علم که سبب علم نمیشه علم خودش علم دیگه بنابراین علم خودشت منطقی نیست به خاطر اینکه خودش ذاتش علمه نه اینکه واسطه در علم باشه علم واسطه در علم نمیشه علم ذاتش علمه ولی زن به خاطر اینکه ذاتش علمیست واسطه برای علم میشه واسطه در اثبات میشه خودش نفس ثبوته نفس اثباته واسطه در اثبات نمیشه اون خاطر میگن حجت منطقی نیست ولی حجت اصولی میتونه باشه حجت اصولی به صورت خیلی خلاصه و تعبیل خیلی ساده یعنی این وقتی میگن قد حجته و زن حجته اصل عملی حجت و ساید این موارد رو میگن حجیت داره حجیت اصولیه دو تا انصور اساسی داره یعنی منتجیت و معذریت هم منجز تکلیف بر اهده مکلفه و هم معذره در مواردی که کشف خلاف بشه یعنی عذری حساب میشه فتوای فقی حجته یعنی هم منجز تکلیفی بر ذمه شما میاد و هم معذره روز قیام بقیه بر خلاف باشه عذری برا شما خط به معنی دوم یقینا هجیت داره که ما اینکه امارات و اصول به معنا معنی و اصولی مال هجیت اصولیه نه هجیت منطقی اونه چیزی که در منطق در باب تصور و تصدیق امسال اینها برا حصول علم ادراکیه این منطق مقدمه حصول علم ادراکی و واقعی و نفس امری برای اونه اون خاطر موجهت منطقی باشه یه چیزی واسقی در اثبات باشه و اون حد وزد و اون کبرایات برای ما تحصیل علم کنن ولی اینها در علم اصول که مطرح نیست در علم اصول ما میخوایم بر خودمون ظاهرن تکلیفی اثبات کنیم و واقعا هم عذری داشته باشیم اگر اصولی دنبال منعجز و معذره اسم این دو تا رو گذاشته حجت بنابرای اصطلاحات نباید خلق بشه شیخ انساری اصطلاحات منطقی و اصولی رو خلقش کرده یعنی به نظر شیخ انساری قد باید حجت باشه و حجت منطقی نیست بنابرای اطلاق حجت بایدش تجوزه وقتی کسی باقید این رو توجیهش کنه اون توجیهات هم عقلاتش بیشتر از مدر میشه به این سه لغوی و اصولی و منطقی آن فرق بذارن اون چیزی که اصولی دنبالشه این که حجت باشه حجت اصولی باشه معذریت منجزیت که شیستت این رو در حقه دوم خیلی خوب توضیح داده و اون منطقی که قد نداره و نیازم نیست داشته باشه حجتیت منطقی حد وسط بودنشه حد وسط یعنی واسطه در اثبات این خودش نفس اثبات واسط در اثبات نیست. بل حاصل ان کون القطع حجتاً ننتي دي غير معقول. یعنی حجت من باشه. حالا نگفته حجت اصولی باید باشه چون در ذهن مصنف اینه که حجیت هم یه معنا داره. اونطوریه که در اصولی معنای دیگه داشته باشه و در منطق معنای دیگه. قط بقید حجت غیر معقوله چرا لأن الهجت در استقای منطقی ما یوجب القط ابل مطلوب حجت به که سبب قطعه نه خود قط به سبب قط میگن حجت نه به خود یطلق و یطلقو على نفس قط این خلاصه فرمایش مصنفه کیشون ایشون به این که به قد گفته نمیشه چرا؟ به خاطر اینکه که خودش نفس انکشافه و حجت از نظر منطقی واسطهی در انکشافه و چیزی که سبب انکشاف باشه بر خود انکشاف قابل ستویست سبب شیع قیل از خود این نسبت متعلق قط این نسبت متعلق قط یعنی اگر به خمریت باشه که موضوع قطع به حکم باشه قطع به حکم باشه مثل وجوب نماز و حرمت شرب خم و ها در این موارد اطلاق حجت بر قطع درست نیست ولی اگر شاره بیاد قط رو به عنوان موضوع یک حکم شریعی دیگه ای اخذ کنه در این موارد حجت بر اطلاق میشه به تعبیر دیگه ایشون میخواد بگه فرق از بین قطع طریقی و قطع موضوعی با دو قسم قطع داریم تارتا قطع طریقیه یه طریق اثبات متندقش قطع به وجوب قطع به خمریت متعلقش میخواد موضوع حکم شرعی باشه مثل خمریت خود, خود حکم شرعی باشه این میگن قطع طریقی یعنی طریق به واقع طریق به متعلقشه این یعنی یک قسم قسم دوم قطع موضوعیه یعنی در موضوع ادله احکام اخص شده شبه نگفته الخمر و حرام که قطعش طریقی باشه بلکه اون چیزی که واسل شده که الخمر معلوم حرام چیزی که خمری که معلوم و باشه حرام در موارد که شاره علم رو در موضوع یک حکم شرعی عخص میکنه که هم بهش میگن قطع موضوعی در اون موارد اطلاق حجت بر قطع حقیقته خوابنی از فرمایش کلی خودش رفعیت کرده که اولا اومده قائل شده به اینکه که قطر غیر معقول حدشت باشه و غیر معقوله یعنی استحاله داره استحاله داره یعنی محضورش عقلیه و احکام عقلی غیر قابل تخصیصه ولی یعنی تخصیص میزنه مسلم اومده تخصیص زده به اینکه که قطعلاق اسمه قطع موضوعی و قطع طریقه در خیلی از مباعث فقیه این مبتلابه در خیلی از موارد احکام برای ذات و واقع ثابته یعنی غرمت برای واقع خم برای ذات خم ثابت منتها اگر علم پیدا کنی تندجز پیدا میکنه اگر این پیدا نکنیم این نداره یعنی اصل حکم ثابته برای این موضوع علم ما شرط تندجز تکلیفه در این موارد میگن قطع طریقیه. در قطع طریقی علم ما شرط تنجز تکلیفه تکلیف وابعن هست و اگر بهشه پیدا کنیم اون تکلیف واقعی بر ما منجز میشه ولی در قسم دوم که قطع موضوعیه در واقع ما حکمی نداریم تمام حکم منعوته به علم ماست اگر علم داشته باشیم به خمریات حرام میشه اگر علم به خمریات نداشته باشیم درمتی در کار نیست بنابراین علم موضوعی، صحیح احکام ظاهریه به حکم ظاهریه واقعی در کار نیست ولی علم به تاریخی در حیطه احکام واقعی است بنابراین بحث تفصیل بین علم موضوعی و علم تاریخی مرتبط میشه به باب احکام واقعیه و احکام ظاهریه و حقیقتش که پنج قول قبل از شیخ انساری تا زمان خود شیخ انساری مطرحه در حقیقت حکم ظاهری به حقیقت حکم ظاهری چیه؟ تا زمان خود شیخ پنج تا قول مطرحه که ها نشده فردا مطرح میکنیم باید برای اینکه که برایشون هضم بشه. اولن پیش مطالعه کنید. شروعی که بر کتاب در سایه هست قبل از کلاس درس نگاه کنن. اونایی که ابتداءن مباحث رو در کلاس میشنونن، نمومله. بومنده خسته میشن و نمیتونن یاد بگیرن. سعی کنید قبل از اینکه کلاس بیاد یک صفحه از رسائل رو حتما پیش مطالعه کنید. با هر شرحی. شرح خیلی خوبی هم داره. شرح عربی البته. بعد در کنارش هم حلقه دوم شهیستد رو حتما بخونید یعنی تقسیم علم به علم موضوعی و علم تاریخی از اون مباحث بخونید که خیلی خلاصه و مفید براقنگی بحثا در ذهنتون و بعدن که کلاسش میارید سمرات که برای هم مترتب میشه هم از حیث هواشی کتاب چون بعضی سمرات رو این کتاب ها میگن که مال ست سال قبله ولی بعضی سمرات هست که الان مترتب میشی برش که در هواشی هم نیست بنا رو متعرض میشیم فرق جوهری و فنی بین علم موضوعی و علم تاریخی، و اینکه واقعیتش چیه من یادمه ما رسایل و کفایه و اصول و فقه و همه اینها رو خونده بودیم بعد اولین جلسه که من درس خارجه به ماه تبریزی دفتن در رابطه با قطع و زن یه مطلبی فرمود اون موقع من تازه فهمیدم که چه خبره یعنی تمام قبلها هرچی خونده بودیم و هرچی گفته بودن در حال یه بود یعنی یک سمره عملی فقهی برش متلطب میشه یا نمیشه تو ذهن ما نبود بعد معلوم شد که این سمراتی برایش مترتب میشه اونا رو متحدث میشیم پس منوت بهینه که آقایان یه پیش مطالعه، 10 دقیقه یک رو قبل از اینکه به کلاس بیای، اینا رو پیش مطالعه کنید با شرایط اعتمادی با سایر شهرهای عربی که اصل مطلب کتاب براتون واضح باشه بعد تو کلاس مطالبی که مترتب میشه برای اینها بحثر کنیم و سعی کنید هم مطالعات خودتون رو هم چیزی که در کلاس گفته میشه خودتون برای خودتون یه جزوهی بنویسید. بعد ما میخوام جزوه بنویسیم هفته بعد شروع میکنیم جزوه هایی هم از قبل نوشتیم، حالا نمیدونم از کدوم قسمت شروع میشه. اونا خیلی مبسوطه، آقای پاسا رو میتونن تایید کنن، مراجعه کنن، فهرست های خوبی هم بعضی از زحمت کشیدن برش زدن، فهرست عربی هم برش زدن. که در رابطه با هر بحثی که چیزی مطرح میشه از اون جزوه ها پیدا کنید یا صفحاتشو پیدا کنید اصل جزوهشو من بیارم آقاین تکسیل کنم خلاصه وقت اگه میذارید برای رسائل رسائل آخرین کتابی باشه که در اصول مقاید بخونید به فکر کفایی نباشید چون کفایی جلسات معمادویه تا یک علم اصول معمه های سی سال رو در دو سال میخونن و همشن تعبیرات رو میخوان تفسیر کنن زمین ها رو برگردونن لغوزگوی با تمام متانت و قدرت متنی که داشته طلب عاجز آجز از اینکه ماورای این, این الفاظ چیزی یاد بگیرن پس رسائل عمده ترین کتابی باشه که آقایم میخونن و اونهایی که تسلط زیادی به رسائل دارن اونا اصولی ترن تا آنهایی به کفایه دارند. یعنی با یک واسط من از مرحومهای خویی دارم نقل میکنم که ایشون فرموده بود تمام علمیت و فنون و صناعت در رسائله ولی چکار کنم که نون تو کفایه است انا کفایه یه مقام منی داره میگن که فایده داره میگه در خارج تقی کفایه ولی تمام المیات‌ها تو در و همیشه در موارد دوران بین نظریه اخوند قراصانی بشی و قضا ی انصاری انصاری مقدم نگره مشابه زبنادر معلوم این ثبته سیادی داره ما قبلا از مراجع رو من دیده بودم که در سایه هم دیگه بحث می‌کردن پیشا از حد واج میکردم چیه کفایه تو ذهن آقای نباشه یعنی برای کفایه فکری نمونه تمام قوای خودتون رو صرف در بکنید ان شاء وسا چشامو